توی سفینه ی امت توی شراغ هدا توی سفینه ی امت توی شراغ هدا توی حلقه مطلق توی مقام رجا توی سفینه ی امت توی شراغ هدا توی حلقه مطلق توی مقام رجا. حریم پاکت و برطرز مسجد العقصان و روج تو ما فوق لیلت الاسرام و روج تو ما فوق لیلت تو فخر آل خلیلی هاشمی من سب. تو فخر آل خلیلی هاشمی من سب چو جده ام جده خود بی بدیل و بی همتا چو جده ام جده خود بی بدیل و بی تا توی زمین و زمان را ملاک بود و نبود توی کرامت رب بلکریم و رامنا بهش دور نمائیز تلعت رویت زیارت تو بود چون بهشت روح روحفظا زیارت تو بود چون بهش روح افزان زلال عشق تو زمزم ولای تو میگار زلال عشق تو زمزم ولای تو میقاد صفای یک نگهد میدهد صفا به صفا حسن حسن مولا حسن حسن مولا حسن حسن, مولا حسن, حسن, مولا حسن, حسن مولا. برو تا ارش سن و سن مولا وقیش مینده که برسی به عرش, عرش. جام لا حسین حسین مولا جاالم آقا! چهارده گل توحید را تو تاج گلی چهارده گل توحید را تو تاج گلی زهتره بوی تو آکنده عالم پالا زهتره بوی تو آکنده عالم مسیحیال به مسیح ها گرفت خارو کلان مسیحی آن به مسیحا گرفت خار و کنن جهال شیعه به نازد به سید و شغدا جهال شیعه به نازد آه حسن حسن مولا حسن حسن مولا نقدر قشعه سینه میزنی همه یه دست خمشن حسین حسین مولا شانه بح بح بح بح مولا حسین حسین مولا شانه بح بح لا اگر که سر و بخونم تو را روان نبود اگر که سر و بخونم تو را روا نبود تو تاغ فلکی ای فراتر از تو با تو تاق نه فلکی ای فرات از تو با هزار یوسف مصرو فرین گرفتارم هزار یوسف اشق فرین گرفتارند به حلقه حلقه ی گیسوی اکبر لیلا به حلقه حلقه ی گیسوی اله ها علیه اصغر و مرشد دو سد پیر است علیه اصغر و مرشد دو سد پیر است چه پیرها که شد از درس عشق او برنا چه ها که شد از درس عشق او وزیر و وزیر جنگ تو برتر طرز مالک اشتر ز مالک اشتر, اشتر, اشتر کجاز حمز بود کم مراتب سقف کجا ز حمزه بود کجا افت زهرا افاف زنی کجا به افت زهرا صد افاف زنی مگر که فاطمه زویا چز زینب کبرا مگر که فاطمه زویا چز زینب کبرا کجا به افت زهرا رسد افاف زنی مگر که فاتم شو زینبه را قیامت از تو قیامت سرات از تو سرات حلاک هر که نگیرد ز دست تو امضا تو فیلیه در این خانه اما مرا بنویس تو فایلی در ایل خانم را بنویس تصادق سرهید در به دفتر زهره تصادق سرهید در بدفتر دفتر زهره حسن, حسن مولا مولای عتب بیت الزهره سلام الله عليها b t z